ولی ظاهران هگل مسیحی بود، از خدا حرف می زد. از روح حرف می ولی نه حرف می خدای هگل دیالکتیکه اون تعریفی که در قلم روی واجه هگل از خدا میکنه میگه مطلق وقتی مطلق رو شهر رو بست می ده، می مطلق همون نسکی، ادمه نبقه خدای هگل همون ادمه، نابودی خب ببینید پس واضحه ای که اگزیستانسیالیزم که از تو شکم فلسفه ایگل در آمده و ترمینال فلسفه ایگله مورنفکنی کامل ایگلیزم و دیالکتیسیزم برخلاف اسمی که با خودش داره اگزیستن سنی وجود اگزیستانسیالیزم یعنی مکتب اصلاحی بوجود برخلاف او که با خودش داره نه تنها وجود گرایی نیست بلکه عدم گرایی است تمام این فلسفه‌ها چون نو فلسفی چون سلسله از ای این این در اخلاق نیهیلیزم انجام در ارزیابی ها انجامید در برپایی یک دستگاه شناخشناسی به نیهیلیزم انجامید بنابراین همین نهایتاً تمام این سوسیالیست ها احساس سوسیالن که به همان چیزی رسیدند. که جورجیاس، اویه دو هزار سال پیش رسیده بود که میگفتش که هیچ چیزی وجود نداره، آنچه که ما وجود ادم. تا اینکه این جو هم خود این واجه و این فلسفه خودش بیانگر عنگر قایعه واجدون فلسفه ای است دلیل وجودی داره ولی بعدم میرسه این کاملا بستر کنیم طبیعیه برای که قایت انتلیکچالیزم و ذهنگرایی تمدن غرب بود و میبایستی بعد در میرسید ولی خود ذهن نواج اسم عدم رو میذاره وجود برای این تمام شعرها و عرض که تو انگزیستان فریز در آمد فریبنده ترین عرض در خودت هایی مشورد ببین؟ جلوه اجتماعی. اجتماعی فرهنگی اگزیستانسیالیزم در غرب به سراسر جهان رفته و دور میره و کیفیگری است آثار ساس رو نگاه کنید او مشهورترین و اجتماعی ترین سخنگوی این فلسفه است چه واژهایی بهکار میبره فاحشه مقدس یکی از نمایشنامه میخواد های برحق و قدسی و ناب رو پیدا کنه در واقعیت بیرونی ولی همینه عملا آگاه و ناخداگاه به اصالت مواد مخدر میرسه به اصالت خودکشی میرسه به اصالت هموسکسوالیزم میرسه ظاهرا ایشون الله سیاسی سوسیالیست بود ولی در عمل کل فلسفهش چنان برجوازی و امپریالیزم و رو تقدیس کرد که خود فیلسوف لیبرال هم نتونستن انقرد تقدیس کنند خود ساس شکست خورده ترین فیلسوف تاریخ تمدن غرب علتش هم این سالار ترین فیلسوف بود علتش اینه و از کنیم چرا و بعضی و زرنگتر بودن دستگاه اخلاقی ارائه نایدن چون یکم رفتن جورت هایی دن بهتر حرف نزنند فقط بهتر از مجردات کنند. از تعیینات و از اخلاق و عملی فلسفی بخواد جابت کنن گندش در میاد بیتر اصلا حرفش،, حرفش هم نباشه ببینید ولی خود هایدگر ریشه اندیشترین فیلسوف قرن و در واقع میشه پدر اصلی تبکین فلسفی ایگزیستنسیادیزم هست که روینا همه شاگر روچه رو حساب سب میشن خود ایشان ببینید میگه که جهان امروز تعین متافیزیک در فیزیکه فلسفی. کمال این تعین میتافیزی در فیزیک تکنولوژی است تکنولوژی تماما برهوت و جموع مالی خولی لحاظ ولی بنابرا در بخش‌های دیاری شدفیمون این خود تکنولوژی میشه مقدسترین و عالی ترین حد فلسفه که تحقق بدا کرده یعنی چون تناقضگویی های مالی خولی هایی تکنولوژی رو قدم روی نابودی بشر میدونه در این حال میگه که اصلا حق همین از حق آشکار شده متافیزیک بلغره در فیزیک تاییم پیدا کرد این همه هرزیون رو ما مراقب باشیم و به این هرزیون های نیافت بعد تنها که اگزیستانتیالیزم داره اینه که زنگرایی غربی رو به ترس اون ماهیت ازدادش آشکار شد و میتونه انسان رو از ذهنیت خودش ناامید کنه تا انسان بالاخره از ناچاری رو به دل کنه رو به دین کنه دین راه دله دین با معنی راه را این راه دل تا رو به دل کنه تنه <تصفح> حالا مثال دیگری میزنیم برگردیم به همون مسئله ذهن و شناخت ذهن که زن سالار بود زن نبوده نبودش بوده خوبش باد بدش خوبه برای همینه ببینید یک فیلسوف ریاضیدان داریم به اسم که مال همین اباصید قرن بیستون بود ایشون تا آخر رو در واقع با نظر من آخرین فیلسوف خردگرای علمی تاریخ تمدن قرن بیشون نظریه معروف به برهان گدل ولی کلام ایشون در این نظریهش به اینجا میرسه بر اساس منطق قیاس و ریاضیات بیشون قیاضی بزرگیه میخواد فلسفه رو تماما ریاضی کنه چرا؟ برای اینکه ذات فکر ایدئالی یا فلسفه زنگرا و زن ریاضیات ریاضیاته از سفر نقطه برخواسته تا به امروز بازه. ما این صحبت رو در بحث رد داشتیم این به این که میسته که الاغاز فلسفه منطقی فلسفه ریاضیات و ریاضیات فلسفی آنچه که درسته غلطه هر پدیده ریاضی هر معادله ریاضی درست به همان میزان و به همان دلیل که این درسته غلطه غلطیش بر درستیشه و درستیش از غلط بودنشه میشه هندی جنون محضه و رسوایی کامل ماهیت اندیشه است که اندیشه نمیتونه انسان رو نه به حقیقت آسمانی به واقعیت وجودی جهان و طبیعت برسوند نمیتونه علم حقیقی از معرفت قلبی و نوری که محصول معرفت نفس ببینید ذهن انسان جهان رو همچون آینه میبینه آینه مثال خیلی خوبی ما در جلو آینه دست راستمون چش... کدومه دست چشمه چپمون چشم چپمون چشم راستمون جلو راستمون مثالی خیلی خوبیست پس در آینه چپ و راست عوضی گرفته میشه روسته؟ سمت کاملا وارونه میشه پس انسان گمراه میشه در حقیقت ذهن ما آینهای است که جهان در میتابه منتها وارونه واجون بر هم کسی که از زن خود که همان نفس امار است پیروی کنه محکوم به ناکام شدنه انسان غریضتن دنبال بهشت میگرده سعادت عزت سلامت حالا چو بهشت تفسیر دینی داشته باشه چوی قریبی داشته باشه ولی در همون جستجوی بهشت سر از جهنم داره میاره همونطوره کل تمدن غربی در جسود بهشت زمینی در جستجوی بهشت گم شده برای نخت کردن بهشت بر روی زمین سر از جهنمی داره برد که اسمش مدرگی با تکنولوژی جهنم میاره جهنمی که کل بقای بشر رو محبون به نابودی میکنه اینجا که ذهن موجود میخمه آدمی. انسان در جستجوی حیاتی جاگید بود برای زمین دیگه ها تا به نابودی میرسه این مثال آینه بسیار مثال لشنگی است ما در قرآن کریم یک مسئله یک واجهی داریم که من نشیدم واقعا بحث بشه حتی در تفسیرها هم من کردم و ندیدم واقعا نیافتم آنجای که ما میگیم وجود خلقت خب قلابا آدم را از ادم آفریده در قرآن در اکثریت و اتفاق در خلقت موجودات در پیداش موجودات از واضح جعل استفاده میکنه جعل جعلنا جعل زمین آسمان کرات همه اینا جعل پس جهان جهان جعل جهان محسوسات از کره زمین، از گاو، از گوزوند، از روزونه، از آسمان، از ماه، از خورشید اینها جهان محسوسات دیگه، مادیات دیگه که ذهن اون رو دریافت می‌کنه. این جهان جاعل. خب جالی جعل یعنی جالی دیگه، یعنی قلاوی. یعنی فرضی. جهان واقعیت نیست. یعنی وجود نیست. عدنه که وجود نمایی میکنه جهان محسوساتی الله ذهن درک میشه ها. یعنی دریافت ذهنی انسان است. برا همین در قرآن کردیم و در کل فرهنگ دینی این کنان وجود داره در قرآن چندین بار آمده آنچه که دنیا گفته میشه دنیا در واقع با عدن وجود گفته نمیشه دریافت هستی ذهنی انسان از جهان دنیاست اینا تری حد نزدیک شده. نزدیک تری حده. برای این آخرت مربوط به امر قلبی میشه. یعنی تا آخر آخر پیداش میشه. و همین حیات دنیا رو قرآن میفرماید که امام رضا حیات دنیا لعب و بیش نیست. بازیچاست، بازی بازیه، رو نخورید. پیروی نکنید دنبال دنیا اینقدر نباشید، دنیا رو نفرستید. فقط در حدی حد که بتونید برخورداری نیازهای داشته باشید، اونم قانع وار زندگی کنید تبایی همین تبایی همین پرهیز کردن و ترسیدن از عالم وجود و واقعیتی که زندگی دریافت میکنه. تو این جعلیه رضای انسان بایستی ازش بترسه بپرهیزه از نفس خود بپرهیز و یعنی بپرهیزه به دامش نیفته این دامه خب در حکمت اسلامی ما داریم عالم هستی رو کائنات رو یک از اسلامی نگه قدم روی برزخه برزخ یک چیزی که هم هست هم نیست بین بود و نبوز اگردانه نمیشه نیست نمیشه گفت هست حقیقتا این هم بیان دیگه دیگه است برزخ. و واقع مسئله عصر و جعل رو که بخوام بحث کنیم واقعیت اصلی از طریق معرفت قلبی و نوری درک میشه آنچه که از طریق ذهن فریبنده است و دیگر ابلیسیست و بیاسیست و قیاسیست اینا این خوب خب که هران چیه در اینجا دهت میشه تماما دیالیفتیکیست متضاد و واجبون سالاره در حقیقت ما بخواهیم قلم روی سیطره ابلیس رو در انسان بگیم ابلیس در کجا انسان داره در ذهن داره فرمان و ذهنی که دارای دلی مومن و روکشن و منور نیست بله این واقعیت دار هرچند که تازه اون انسانیم که ایمان میاره تا قبل از همون با اون اخلاص در ایمان و یقین برسه هنوز هم وصفصه زهن ایبلیس وجود داره و باید همیشه خوشیار باشه و فریب ذهن خودشو نخوره یعنی فریب ایبلیس ایبلیس یعنی ادراک محسوس زهن ایمان میاده اون باشه در این حال ما میدونیم این جهان جهان ایده هاست, هاست ولی به ماتریالیزم ختم میشه به ماده پرستی این ماده ما گفتیم باز جعل به جل پرستی به پرسته چیزی که وجودی ابدی پایدار و حقیقی نداره گمراه کننده است پس ماتریالیزم اروپایی که دو سه قرار پیدا شد محصول طبیعی ایدالیزم بود اینا زد نیستن، نه ماتریالیزم ترمینال بود. معلول ایدالیزم چرا برای اینکه ایده جهان خاره مده پره است میبایستی از سوش در میمد بنابراین پس ماتریالیزم مثلا مارکس نتیجه طبیعی ایدالیزم افلاطونی نیست از سویست طبیعی برای همین مدنی فاضله کومونیز مارکس هم دقیقا برداشت شده از جمهوری افلاتونی با توصیفات و ویژگی های از البته خود در همون جا بعد ما فکر نکنیم افضاتون خدا پر از تحقیقی بود, بود و مارس مزد بود نه این یه خطای بسیار بزرگ بوده که در حکمت اسلامی وارث شده و فلسفه ایدئالی و دنیا پرستانه افضاتونی ارستوی رخنه پیدا کرد و عمد و صرف در حکمت اسلامی و فلسفه اسلامی رو فریفت و این بزرگترین شرک در قلم معرفت اسلامی بود که روخ بزرگترین شرک و اسلام براندازترین و خانمانسوسترین شرک ها چنین واقعی بوده. افلاطون پرستی در فلسفه اسلامی واضحه دیلتیفترین مکتب فلسفی در میان فلسفه اسلامی محسوسی به مکتب اشراق یا مکتب افلاتون مکتب افلاطونی هم ادامه تکمیل شده تری اما مکتب افلاحاتونی هم حالا عرصوش دیگه ماتیوریش سریع و اسلام مکتب مشا تازه اشراقیش هم افلاحاتونیش هم در واقعه بشه کفر که وارد حکمت اسلامی شد خب این بحث بسیار مفتصدیست البته ما این رو طرح کردیم قبلان یه بار ترک کردیم جای بسیار بحث داریم مطلب دیگری که از بیان دیگری قابل ملاحظه است، اینه که ذهن انسان به خودی خود میگه که آنچه که هست نیست داد من نبایستی باشه این ذهن ذاتن کافره کافر این منکر مخلوقات خدا جان. نفیش میکنه و دازا برای خودش ایدال میسازه ولی در همین و ایدال سازی و خیال پردازی به پرستش همون چیزی میرسه که نف کرده بود یعنی به دنیاپرستی به مادهپرستی به مسوساپرستی میرسه فقط این همی دزتی دیگریه که پگی خود ذهن خود ذهن این کار است این امن نیست خود ذهن همین کارو میکنه خود ذهن همون چیزی رو که نف میکنه میپرسته همون چیزی و که رو لعنت میکنه پس بسی گفت که ذهن واقعا دیوان است اینکه در رو عمده که در اون روز ملائک میگوین پروردگار اکثریت مردمان که مجنونند اجنر میپرستند حالا اینکه ادعا که خدا رو ببین؟ واقعا نمیدوره و از به خودی خود مستقل از دل و ایمان قلبی و معرفت قلبی خودش کافر و دیوانه است تو میگه هستی میگه نیست؟ برای همین همیشه هم امماره یا یعنی یعنی امکننده همهش بایستی بایستی میگذن این, این بایستی آن نبایستی این بایستی آن نبایستی این جهان راسته میکنه. دو شقه یکنم وانسان ر بینین دوشقه به, دو به استیلاک و هلاکت میکشون ولی معرفت قلبی نیجا آنچ است؟ هست هست و نیستی اسما وجود نداره جایی برای نیستی نیست هستی هست این معرفت قلبی است معرفت ایمانی است در مهوم کامسرش معرفت عرفانی است برای همینه ذهن کافره این جهان آقا نباستی باشه بی خوده فایده نداره نزا ساید میکنه این دنیا رو تبدیل کنه از طریقه او رو تکنولوژی جنگ داره با جهان زن جنگ داره با جهان و چشمی دیدن جهان رو نداره زیرا نمیتونه بفهمه چشمی دیدنشون رو نمیتونه بفهمه جهان واقعیت رو از چشم دل میشه دید کسی این چشمی وعدانیت خدا با حضور خداست که درک میشه برای همینه که خود معقوله عشق نه اون نه این که تو بازار در دست مردم هست بوده میشه عشق ایثار ایسار برای همینه ذهن خیلی که میخواد معنگی بشه آنجای که بول میشه و ارخصوا میشه تم عشق و ایسار میزنه اونجا کمال دیگه حق و جنونشه خب ببین چون ناکام میشه از دست میده اون وقت ماست ریخته رو بقیر مروف نظر حضرت عباس میکنه. میگه من ایسا را که من عاشق هستم برای همین واقعا آن کسی که اهل معرفت ردویست دم از ایثار نمیزنه اهل محبت جهان رو و اهل جهان رو دوست داره با کسی در جنگ نیست برای اینکه میبینه آن چه که هست تماما است. و کافی سوالی تری نه جان هاست چشمی جهان رو پیدا کرده نزا قانه در جنگ نیست اینکه در افغان استای میگیم کمال معرفت صلح با جهان و جهانیان است یعنی معرفت قلبی منظور اللهی زینی انسان هر چی که معرفت زینی شناختای فرمولای زینی شاصوزه میشه انسان جنگجوتر کافرتر و از نهایت با خودش به جنگ میفته چرا قایت خردگرایی به سبک اروپایی و زنگرایی فلسفی در غرب در قلم روی الگزیسیالیست قلم روی هاست کم فلاصفه و عوشن فکران الگزیسیالیست خودکشی نکردن اصلا از یه لاز فلسفه الگزیسیالیست فلسفه خودکشیست ببین این قایتشه انسان واسه که رو بکشه نبود کنه نمیتونه نایتا بجونه خودش میفته با خودش میکشه قلم روی خودبرندازی ذهن ذهنه خودبرندازی که البته این بر حق این ا به طورت خودش رو تصدیخ کنه و توبه کنه از دنیا برستی و از جعل برستی ها تا درب دل باز در درب ایمان باز شد پس ببینیم تا همین کلی واضح شد که خدای ذهنی مذهب ذهنی خدا و مذهب شرک شکل در قرآن واضح قلم روی چرا برایم که از تضاد پلستی بدید اومده و خداوند شرک رو ظلم از این نامیده که من نمیبخشم بخشم گناه شرک رو عذاب میکنم مشتکین خداوند نجس نامیده یادم ای باشه این کلمه نجس حتی برای منافقان هم نیمده تا اونجایی مخبر داره که شرک خانه برانداز تر از نفاقه این آنچه که تحت عنوان فلسفه اسلامی معروفه اسلام شرک اسلام شرک و از الکندی فارابی بوهلی یک رشد تا حتی مولا صدراب و میرتماد همه اینا میرازخاران فلسفه یونانی هستند واضحه بلن فلسفه یونانی هستند هر فیلنشتند. اونا که حالا یه مقدار بعدم اسلامی ترش کردن یه ای سری آیات و حدیث و باشده های قرآنی را بکار بردن این دیگه آرایش و بقولنه چاشنی قضیه بوده سس اسلامی زدن به این فلسفهاش فرابی خب معلم ثانی معلم اول رو نوستن ایشون تمام فلسفه یونانی بود. فلسفه یونانی رو ما در یک ما بحث دیگه, دیگه, دیگه کردیم که اصلا چه بوده حتی فلسفه های شیعی مثل ملا صدرا و که اینا شیعی ترین ها هستن به نظر شیعی دوازده امامی نیمان میکنیم قبلن هم اشاره کرده تماما فلسفه یونانی است که اولا ملا صدرا و میردامه دومدن از واجه های رفعانی مصطباده کردن و این نهایت رضیه اگر تشایی و امامت امام یک تعارف فقط در فلسفه ملا صدرا اشمان ودود امام رو برای هدایت ضروری نمیدونه بلکه حتی با توجهاتی که میده اصلا موظهر میدونه پیر رو مراد رو میرداماد نگاه کنید اسم خداش رو داشته یک واضعی یونانی اقصدست چیا یونانی زدگی تا سر حد جنون تا سر حد برای همینه انقلاب کسی مثل غزالی درک میشه ایشون هم یکی بزرگ بود به ناگاه بیدار شد و قیام کرد بر فلسفه یا شیخ باهایی در هفت سالگی سال قیام کرد بر فلسفه و فهمید که آقا این لفتی به اسلام نداره بس امروزی سرش کنیم آنچه که امروزه روشن فکری دین میشه همین فلسفه گری یونانی نوع بازاری تر و آمیانه ترش هست. روشن دینی باشتم فکری دینی نرفتی به دین داره نه به فکر داره نه به روشنی داره روشنایی از اینجاست از نور ایمان است فکر و عقل و شعور چون که طریف قرآن تماما قلبی قرآن از یه کتاب قلبه کتاب درشون است که واضح که از دین ایمانه از دل بزرگوشن که که دینی نه رفتی به روشنایی داره نه فکر داره نه دین داره این یک اختراعی برایت خطرناکی. برای هم نجریاناته که تطعیه این عنوان دارن کار میکنن رو ما در عمل میبینیم که در عمل همشون لایکند لا مذهبند حالا دیگه خیلی میخوان دیگه فرمای دینو نگه دارن دیگه سکولار میشن. این بایستی در پس پرده باشه در پس سوحانه خونه ها باشه یه چیز خصوصی احساسی بایست باشه دیگرالا خیلی لطم کنم این چیز بگم این؟, این واضحه که ما بایستی بفهمیم که معرفت یعنی چی فکر یعنی چی ما برگردیم اگر ما به قرآن در اینجا من یکبار بار دیگر آن اون دکتر شریعتی رو متذکر میژن ایشان وسیتش این بود که آقا به قرآن برگردیم ایشان گفتند که بازگشت به خویشتن خویش معرفت نفس جز از قرآن ممکن نیست ایشان در آخرین صحبتهایی که چند هفته غلق قبل از گفتند که صداش و نوایش هست ایشون گفتند آقا بیاییم تکلیف مسلمانی رو روشن کنیم تعریف کنیم که آقا جان مؤمن کیس کافر یس مشرک کیس, کیس بازی کنیم تعین و نه تفصیل فسکشون نشان های بدونی و عملی و حسی مومن و قفل مشکل چیست ایشون این قضیه را درک کرده بودن کاملا اهمیتش را وازگشتی به قرحان با بکنیم اگر مسلمانی تا بتونیم بسنیم که فکر یا نیچی دین یا نیچی ایمان یا نیچی خود شریعتی روشن فکری دینی بله واقعا شریعتی یک روشن فکر دینی به مفهوم واقعی خود این کلمه بود یعنی هم متدین بود متدین مؤمنی بود هم صاحب تفکر و خرد قلبی و حکمت قلبی بود هم صاحب نور بود نور معرفت بود برای همین بود که این نور رسوخ کرد در قلب مردمان و مردمان رو بیدار کرد مردمان بیدار شدند و لذا حق دین رو پذیرفتند، و لذا دین رو و حاملانش رو یعنی روحانیت مؤمن و انقلابی رو پذیرفتند این رهبهی رو پذیرفتند پس روشنفکری دینی کسی مثل شریعتی رفتی به این روشنفکری های دینی که امروز تو بازار هست مطلقا نداره ببینیم پس این سال که خب حالا چه باید کرد به نظر من حرفیست بسیار زود و عجولانه. چه باید کرد های عجولانه خرنبیستوم برای ما در سبرت بزرگی بوده بله چه باید کرد جواب طریقیش اینکه آره باید فهمید باید فهمید قبل هر کاری بازی فهمید اول بایست فهمید اول بایستی دید واقعیت رو تا یک کاری باش کرد کسی یه کوره نه واقعیت رو هر کاری بکنه کورما کورما مسلمان نمیتونه درست کنه خرابتر میکنه بقول حضرت علی دوزخی جز بیمعرفتی نیست انسان بیمعرفت انسان هلاکه هلاکه کسی که خود را نشناخت محکوم به هلاکت و نابودیست بنابراین یک بار دیگه صحبت رو مرور میکنیم و جنبندی میکنیم در قلم روی معرفتی دینی و اسلامی، آفات، بلا و بدبختی و شرک و فساد و فتنه، جز فلسفه یونانی ما نداشته و نداریم اینو باستر کن ببینید این یونانی ها عقیقتن دارای یک نبوق خاصی بودند نبوغشان در دنیا پرستی سورتگلی و سورتپرستی و بتپرستی تمدن یونان تمدن بود هاست. تمدن مجسمه هاست تمدون تاعتر نمایش این اما این یونانی ها در اتحاد با نفاق بنی اسرائیلی بنی اسرائیل هم در مشاخه سامریش که ضد دین مشابودن نیز نوابقی عجیبند و تمام نبوغشان تبدیل دین به دنیاست تبدیل کلمت الله به کلمت لبلیس بوده در اتحاد با این دوتا نبوغ آن نه کافرانه و این بوغی منافقانه کل این تمدن رو تا به امروز راژته کرده این هم ما میبینیم که فقط این تمدن امپریالیستی استکباری در اتحاد با همون سابقه قدیم خودش یعنی یونانیت و بنی اسرائیل میکنه می‌کنه امپریون سنگیز درست به همین دلیله که جدایی نافذیرند تا به امروز هست این یک مشکل قدیمی منقرض شده نیست نخیر تا به وجود حضور داره ببینید جنگ بین شمس تبریزی و مولای رومی اون جنگ دو ساله ای که نهایتاً به خون خون ریزی کشیده شد و شمس تبریزی رو شهید کردند، جنگ بین حکمت اسلامی و فلسفه یونانی است مولای رومی یک فلسفه کامل بود فلسفه یعنی یونانی شمس تبریزی یک حکیم امامی بود جنگ این دو بود اینکه شمس تبریزی شرط ماندنش رو در خانه مولانا اینو قرار داد که آقا تمام کتابات رو بعد بسوزن و بعد تو مغزت پاک کن در این صورت نمیذانیم با آن دیگه بفاقت کنیم ببین؟ این بوده ما میدونیم یونانی ها از قدیم و از قبل از اسلام در رفت آمد به ایران و ارتباط با حکمت زرستشتی سایی کردند، حکمت زرستشتی رو تماما تبدیل به مادیت و ماتریالیزم بکنند بعد از اسلام همینطور بود در تاریخ صدر اسلام ما دیدیم که حجوم فلاسفه یونانی به جهان اسلام در نزد ائمه حرص اونها برای گرفتن همچین گنجی و تبدیل این اسلامی به علوم و فنون دنیایی. برای همین امروزه مسلم شده بدون برداشت این فیلسوفها و علمای ماتریالیست اروپایی از حکمت اسلامی این تمدن مدرن قرب امکان نداشت پدید بیاد این مهرزه و مسلمه یک بسیعه لاحده است پس به صوبت اصلیمون برگردی می‌رسیم به شرک قرآن بزرگترین خطر رو شرک قرار داده کفر و نفاق هرگز خطری برای دین نبوده کفر تکسیفش روشنه نفاق هم منافقه هم دورز رسوا میشن هرگز نمیتونن در دین رخ نکنن چون تضاد کف با ایمان نه علنیه هرگه درگی نمیتونه نخونه کنه یه تضاد فیزیکیست یه جانگی بیرونیست علنیست بود در روست دشمن و آفت دین و ایمان شرک بوده و شاهره شرک برای ایمان اسلامی معرفت اسلامی و حکمت اسلامی فلسطه یونانی اندیشه ای اروپایی بوده تا به روزم هم هست اسمش هستم اون قرب زدگیست. این همانه در واقع اسم درستش دل یونانی ز ما اون بزن اونانی زده است فرق ببینید شک واضح ترین, ترین صحبتش در قرآن آمده یعنی برای خدا شریک قایل شدند بقول مروح خدا و خورما رو با هم, هم میختند دین نفی خرما نیست میگه آقا چون خورما سر جای خودش بست باشه خدا و دین سر جای خودش هر کس خورما میخواد خود خدا میخواد بفرما خدا ببین ما مرساز نیستیم نه ما میگیم این اختلاط التقاط کردیم غلطی اختلاط باست بگیم اختلاط این همه فصال فتنه آفریده بنیاد دین رو برکنده اختلاط شرک بسیار موزیانه عمل میکنه. ریفوستی عمل میکنه. وقتی میگیم شرک یعنی برای خدا شرک قایل شدن خب من اگه فرض کن شرک من چی شکلیست هر که شرک خودش رو داره دیگه شرک من اینه که من خودم رو خود رو شریک خدا کنم خود رو شریک خدا کنم با خدا قاطی کنم خب با صحبت که سای مشخص شد که هسته مرکزی من منیت و خودیت آگاه و دنیاوی و نفسانی فرد بس شد ذهنیت بشه خدا هم گفتی خانهش اینجاست به میزانی که من میخوام خودم رو با خدا قاطی کنم مشرک میشم و من باست خود رو تسلیم خدا کنم نه یه قاطی با خدا کنم بسی تماما تسلیم خدا کنم خب این رو هم متذکر بشیم این افراط و تفریق به این شکل ما داریم باز خب پیپیگری در جیگری های کازب همینه دیگه اونا با کلی آگاهی و انگیش رو میگن آقا ما عشق اهل اشق و حالیم و اهل دلیم و بعد میگید در زندگیشو میبینی قرق در جنون هست و اسمشو گذاشتن عشق و حال از عهد حال عارف کامد عهد طبعیت از قرائز کور و پایین رو گذاشتن عشق و حال شکم و زیر شکم شده عشق و حال باشیم به این ور باز در نقلتیم حالا چگونه خود میتونه و قدم روی خدا که در دله برسه چگونه آه؟ چگونه این راه تیم میشه آه؟ این راه همون دینه دینه نی راه و احکام دین خدا ما خود رو به خدا میرسانیم آه؟ احکام, دین خدا. احکام دین خدا بس بتونیم که اصول عملی دینه فروه دین اینا اصول عبادی هست اینا میبه های طبیعی هست اینا اصول دین نیستن نماز روز خمسفا اینا اصول دین نیستن که اینا میوه های طبیعی که از یک انسان مؤمن برمیتابند به طور طبیعی اصول عملی دین واضح، دروغ 124 زای پیغنبر و مدن آقا دروغ نگید، اونم مستساده و اصل اول دینه قناعت دوری از حرامخاری، دوری از زنا و ربا با همیستاد دین همینه که ما این اصول رو جاری میکنیم، از خود به خدا میرسیم خود رو در خدمت خدا در میاریم و وجود ما از این دو شقه‌گری نجات پیدا میکنه. به وحدت میرسه وحدت وجود فلسفه نیست افسانه نیست یعنی وحدت اینجا و اینجا این دوتا با هم یکی میشن یعنی یکی شدن من چی میشم میشم موحد کسی گفت خدا یکی نیست و با اینکه بهداش 28 تا 50 تا بود پراستی‌های یونان باستان و هندو باستان هم تک خدایه. خدای خدایان الهی هستن ولی یه خدای متعال در بالا وجود داره پای دو خدایی و صد خدایی به صورت ایدولوریکی وجود نداشته ببینید آنجور که ما کفر در قرآن میفهمیم کافران که نمیگن خدای وجود نداره قرآن میگه کافران میگن که خدا در جای بسیار بسیار دور است پشت آسمان هاست اینقدر دور است که گویی نیست و در واقع نیست ولی در ایده هست پس خدای ایده و ایده خدایی خدای ذهنی خدای همون خدای کافرانه است خدا دست یافتنی مترادف با, با نیستی و عدمی یاد با اون باشه این خدای کفر پس کافر کسی نیست که بگه خدا نیست یعنی اگر کسی بگه خدا مرده است ها این به کفر نمیصونه خودش عذرخیر شما صحیح شما اینطور داره ظاهران نمیگه خدا مرده است بقول اقبال لاہوری میگه ایشون قلبی مومن و ذهن کافر داره ولی زندگیش رو زندگی مرتازانه و مؤمنانه است می‌بینید اینها ملاک تشخیص کفر نیست این گول رو نخوریم مارکسم ظاهرا هرکز خدا نزد ظاهرا خدا و گذشته بو کنار ولی دیدیم که براساس آرمانش که عدالت بود صادقانه زندگی کرد و در فقر و گرسنگی مرد و خودشو به سرمایهداری نفروخت از گشنگی بود زربزر و بچهاش هلاب شدند مردند ولی خودشنو نفروختند و از کفر اینا نیست کفر در وادی کلمه نمیشه کفر و رو تشخیص داد عمل زندگی انسان که اینا رو تفتیک میکن دنیا و آخرت آخرت اینجاست دنیا اینجاست من دنیا با خدمت آخرت درگرم نه که دنیا رو خسف کنم دنیا رو نمیشه حصف کرد انسان در دنیا برای زندگی میکنه اینجا اسلامه اینجا ایمانه خود میگه نگوید ما مؤمنانیم ظاهره که اسلامتون قلبی نشده است ببینید پس ما اگر تشخیص بدیم فرد مسلمان مؤمن مخلص چیست این همه خطا نمیکنیم. و باز هم متذکر میشیم حرف اول و آخر درباره اخلاص در دین همون آیت الکرسی لا فی الدین اگر ما احکام مربوط به مومنان رو به مسلمانان یعنی آنهایی که هنوز دینشون زینیه بخواهم بزرگ ادقا کنیم ما اونها رو منافق کردیم و مرتکب ظلم شدیم یعنی ایمان رو شریک کفر کردیم یعنی شرک شرکی ایجاد کردیم بخش عظیمی از احکام در قرآن مخاطبش مؤمنان هستند نه مسلمین ما اشتباه گرفتیم ما فکر کردیم هر کس نماز خون مؤمنی هست تا نیست اصلا لزومی اینطور نیست این واژه یعنی قران اینو واژه کرده اصلا ما کافیه قرآنو بخونیم فقط یه بار دیگه اصلا تو به تفسیر نداره قرآن قرآن اصلا تفسیری یعنی از این حد واضحه خود نمیشه حقیقت رو بیان کرد تفسیر قرآن خودش نوعی گمراهی بوده تفسیر قرآن همیشه به تبديل قرآن رسید شده تبدیل دین به خوف کافی قرآن رو بخونیم به زبان ساده و باور کنیم فقط و همین ساده بنابراین این صبتها که کردیم از توش هیچ حکمی الله سیاسی اقتداری نمیتونه در بیاد فقط مباسی بفهمیم بفهمیم که مسلمانی مؤمن بودن مخصص بودن اینها با هم بسیار متوابطه احکامی که مربوط به یک مسلمه بسیار متوابطه با اینچه مربوط مؤمنه ببینید هجاب مربوط مؤمنان تو قرآن وازه. پس تا بیه من اگرد یک مسلمی رو که فقط یک مسلمانی ذهنی شعاری داره هنوز در این مرحله ابتداییه من اگر بیام احکام رو بگه الغا کنم اون رو دیوانه کافر کردم و مرتکب ظلم شدم برای اینکه احکام مؤمنانه رو با مسلمانانه شریک کردم یعنی این شرک حالا اینکه بیام گبر و یهود و کومونیست هم بخوام اینا حقام مومنان را و اینها دقا کنم دیگه معلومه دیگه چه کردم با دیمه چه فتنه ها کردم اینها ما باستی بیان بفرمیم اینها باستی بفرمیم باستی هیچ کاری نواستی میکنیم فیلت ما هر کاری که تونستیم کردیم یه کار رو نگردیم ننشستیم یکمی هم فکر کنیم که چرا این همه اپتال ها و پوچی ها با دید که شکل قرآن میگه که اعم همهش توفه سرباله هست. ما مفهوم این توفه سرباله ها رو باستی درک کنیم. توف سرباله ها در شرک شکل رو باستی درک کنیم. شرک در عملی واقعی زندگی رو باستی درک کنیم. بنابراین در دیلی ایمان نیست در آن سر عقل هم نیست. ببینید در قرآن واضحه. ایمان و عقل و علم و حکمت و عزت و حرمت و آرامش یک طرف قرار داره. دا؟ کفر و جهل و جنون و تشنج و هزین و افتخار طرف دیده در آن اینها رو ما بدانیم. بنابراین ما یک مؤمن احمق نداریم. نمی‌توانیم که فلانی مؤمن است، ولی متأسفانه یک کمی جاهل است. نخیر. میزان عقل، درجه عقل و ایمان در یک انسان همیشه هم ترازه. ما نمی‌توانیم که فلانی انسانی بسیار خردمند و است، ولی متاسفانه کافر است اینها این, این حرفا نشون میده که ما اصلا نه قرآن فهمیدیم چی نه دین فهمیدیم چی نه اسلام هیچ فهمیدیم چی نه یعنی خودمون رو نفهمیدیم اینها حاصل عدم معرفت خودمون در مورد خودمونه. است بقول علی جهلی جز بی معرفتی درباره خیشتن نیست پس ما خودمون رو نفهمیدیم این خود فردی این خود ملی این خود اسلامی این خود انقلابی رو ما بس بفهمیم چرا این خدا مواجه با ابطال شده لذت شرک شرکار بواسطه یعنی ذهن ما گفتیم رسالتش اینه که انسان رو ناکام لذام معیوس کنه مایوس رسالتش اینه این ابلیس ابلیس از بوسه بوسه نی تو قرآن میگیم ابلیس اولی معیوس شده بود و زضا سعی کنه تمام مردمان رو معیوس کنه خب ببین پس مقاله‌ فرماندهی ابلیس همون ذهن انسان در ذهن که معیوس میشه ذهن تو فسربلاس است لذا رسالتش پوچی و معیوز شدنه اونتا این یه است ما درک کنیم با قول علی این یه همان همون پیروزی بزرگ میشه بر آستانه ایمان و حکمت قلبی قرار میگیریم باز هم تذکر میدیم که دوزخی جز بیمغفتی نیست تذکر میدیم که دین عملی با امور عبادی متفاوته ما فکر نکنیم دین و ایمان خلاص. این یعنی نماز و روز و حج و زکات، ابن مرجم ها و شمر ها اتباقا در این مسائل بسیار وسواس داشتن این تاریخ آین عبرت ماست علی میگه دروغ نگوید حتی اگر جانتان در خطر است فکر می کنید انجام بدید راست بگید میبینید اتباقا جانتان چه بسان در جات پتر دروغ مسلحتی اساس شرکه یعنی راست دروغ رو به هم بیختن میبینید ما این موزه در دروغ مسلحتی هستیم لذا همه چیزه همون مسلحتی شده نمایش ظاهری یه قشنگ اندرونش فقط تباهی و دروغ و فساد و رسوایی ببینید راست سرق صدق دینه از طریق صدق ما باستید با خودمون صادق باشیم تا بتونید با خودمون رو بشیم تا خودمون بشناسیم بنابراین آقا راه منفت نفس چیه؟ هم؟ صدق این چیز جدیده نیست 120 انسانها رو دعوت به صدق کردن تا من با خودم صادق نباشم نمی‌تونم رو به خودم باشم تا بتوانم خودم رو بشناسم به همین پس عرفان آقا فرمودش فرمولش فرمودش صدقه از صدقه سفینتون نجات بنابراین ما از مسائل مثال فیزیکی دو باید ما از اکانه دین صد و بیست هزار پیغمبر تا صحبت میکنیم که امروزه فراموش شده من اول خودم رو به بعد همه مردم رو دروتی به صدق میکنم چون هیچ راه نجاتی نیست بیاییم دکون ابلیسی دروغ مستهتی رو تعطیل کنیم تا در جهنم تعطیل بشه.